نفست به سگ خانه همیماند راست، جز میان توهی از او هیچ نخواست، رو صفت از خواب خرگوش دهد، آشوب پلنگ دارد و گرگ دغاست. هر سبزه که در کنار جویی رسته است، گویی لب فرشت روی رسته است، تان بر سر سبزه پا بخاری ننهی، کن سبزه به خاک لال روی رسته است. هر دل که در او نور محبت بسرشت، گرساکن مسجد است و گرزهل کنشت، در دفتر عشق هر که را نام نوشت، آزاد دوزخ است و بارق بهشت یک جرعه میز ملک کابوست بهست، و از تخت قباد و ملکت توست به بهست، هر ناله که آشقی برارد به سهر از نعره زاهدان سالوس بهست.